کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام حسین رو به جانب خیمه کرد و گفت یا سکینه یا فاطمه یا زینب یا ام کلسون علیکن من نسلام من هم رفتم خدا حافظ سکینه فریاد زد تن به مرد دادی و دل بر رهیر نهادی؟ گفت چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاوری ندارد؟ گفت ما را به حرم جدمان بازگردان؟ گفت اگر مرغ قطا را به حال خود گذارند می خوابد؟ پس زنان آواز در هم انداختند حسین آنها را خاموش گردانید و روی به ام کلسوم کرد و گفت ای خواهر وصیت می کنم که خیشتن را نیکو بداری و من به جنگ این لشکر میروم سکینه فریاد کنان نزد او آمد و حسین سکینه را بسیار دوست داشت او را به سینه چسبانید و اشک او پاک کرد و گفت ای سکینه گریه تو پس از من بسیار خواهد کشید دل مرا به سرش که خیش مسوزان به افسوس تا جان در تن من است و چون کشته شوم ای برگزیده زنان تو سزاوارتر هستی به بدن من که نزد آن آیی حسین دختر بزرگ خود فاطمه را بخان دونامه پیچیدهی به او داد و وصیتی چند وی را بگفت و علیه ابن حسین بیمار بود و مردم را گمان این بود که او در گرو همان است که دارد و امید بهبود او نداشتند فاطمه بعدها آن نوشته را به علیه ابن حسین تسلیم کرد و خواهر خیش زینب را وسیع گردانید، برای آنکه که امامت علی ابن حسین پوشیده باشد برای تقیه و حفظ وی. و حسین اسم اعظم و مواریس پیامبران را به علی ابن حسین موهبت کرد و انگشتری در انگشت او کرد و گفت که علوم و صحف و مساحف و صلاح نزد ام مسلمه است و ام مسلمه را فرموده که آن امانت را به اهلش بازگرداند. علی ابن حسین گفت پدرم آن روز مرا به سینه چسبانید و گفت ای فرزند از من این دعا فراگیر که فاطمه به من آموخت و او از رسول خدا و او از جبرئیل فرا گرفته بود در هر حاجت و مهم و مصیبت که پیش آید و امر عظیم دشوار بگوی به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق تاها و القرآن العظیم یا من یقدر على رایج السائلين یا من یعلم مافز زمیر، یا منفسا عن المكروبين یا مفرج عن المغمومی، یا راهم الشيخ الكبير، یا رازق <تصفيق> التفل الصغير، یا من لا يحتاج إلى التفسير، صل علی محمد وآل محمد وافعل بی كذا و کذا به حقیاسین و قرآن حکیم و به حق تاها و قرآن عزیم ای که می توانی نیاز نیازمندان را برابری و ای که میدانی آنچه را که در نهان هاست و ای که گرفتاران را گشایشی و ای که غم غمگینان را پاک کنی و ای که بر پیر سال خورده مهربانی و ای که روزی نوزاد خرد را می دهی. و ای که آشکاری بینیاز نیاز از هر تفسیری و توضیح درود بر محمد و خانوادهاش فرست و با من چنین و چنان کن حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خیش و فریاد زد کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند خدا پرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت کند فریاد هست که برای ثواب ما را یاری کند صدای زنان به بلند شد حسین روی بگردانی طفلی از آن خیش را شنید از تشنگی میگرید شیرخار بود نامش عبدالله او را بگرفت و گفت ای مردم اگر بر من رحم نمیکنید، بر این تفل ترح هم کنید هرملت ابن کاهل اسدی تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را زب کرد حسین بگریست می گفت خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند آنگاه ما را کشدند دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت چون چشم خدا می بیند آنچه بر من آمد سهل باشد و خون او بر زمین ریخت و گفت ای پروردگار اگر نصرت را از آسمان بر ما بسته ای پس بهتر از آن نصیب ما کن و از این ستمکاران انتقام ما را بگیر. حسین ابن تمیم تیری کند که در لب او گرفت و خون از دو لبش روان گشت. از به زیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و تفر را به خون بیاغشت و دفن می کرد. حسین برخاست و این ابیات گفت کافر شدند این قوم و کفرشان تازه نیست، قبل از این از ثواب خدای روی گرداندند، همینها بودند که علی را کشتند و پسرش حسن را هم، که نیک نهادی و بزرگی از پدر و مادر رسید، از سر کینه دل گفتند، جمع شوید تا همه بر حسین یورش بریم، داد از دست مردمی پست، که جمع آمده اند جنگ کسانی را که دو حرم خانشان است تا آن دو زندیق را راضی کنند راه افتادند و سفارش می کنند به هم که ریش هم برکنند و هیچ نمی ترسند از خدا که خونم بریزند پسر سد لجوج و کین توز لشگری انبوه بر سرم ریخت چون دانه بارانی سخت و مرا تیر پشت تیر افکندند جرمی نکرده ام، مگر که افتخار میکنم به دو ستاره روشن یکی رسول خدا که از قریشند پدر و مادرش و دیگری علی که پس از رسول خدا بهترین خلق است. پدرم برگزیده خداست از میان مردمان و مادرم پس از اوست، پس منم فرزند دو برگزیده ترین مردم، من آن نقرهام که از دو طلا به دست آمده است خورشید پدرم و ماه مادرم و من آن ستاره که از خورشید و ماه زاده هم. کیست در عالم که جدی چون جد من باشدش یا وی را معلمی باشد چون آن پدرم پس منم فرزند آن دو که همیشان میشناسند مادرم فاطمه زهراست و پدرم همو که در هنین و بدر کوبنده بود و کف شکن پدرم هموست که از گاه کودکی خدا را پرستی قرنش لات و پرستیدند وقتی او بر دو قبل نماز گذارد هموست که در اهد تاراند لشکر کفار و اشرار را و غم و اندوه را از دل اهل ایمان زدود در فتح مکه و احزاب هم که مرگ بر اهل دو قبله میبارید. پدرم مرگ و شکست را در هم پیچید هر چه کرد در راه خدا کرد پدرم بنگرید حالا که این امت بدسرشت با اطرتش چه کردند اطرتی که اطرت پیامبر برای است و اطرت او که چهره اش گلگون بود آنگاه که در جنگها همه چهره زرد بود چون حسین آنها را دید بر کشتن وی متفق مصحف را بگرفت و بگشود و بر سر نهاد فریاد زد میان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد رسول او ای مردم به چه سبب خون مرا حلال میدارید جبه از خز پوشیده بود و امامه بر سر داشت و به وسمه خذاب کرده بود بر اسب خیش سوار شد و آهنگ قتال کرد مقابل مردم به ایستاد، شمشیر برهنه در دست، نومید از زندگی آماده مرگ. حسین سرود، ما چراغهای خداییم، نورفشان در میان مردمان، هدایت در خاندان ماست، و وحی هم که ما را به نیکی یاد می کند. مایه امانیم ما مردمان را، و صاحبان حوض ماییم. دوستانمان را با جام رسول خدا مینوشانی پیروانمان جوانمردترین پیروانند و دشمنانمان روز قیامت زیانکارانند و مردم را به مبارزت خواست و هر کس نزدیک او میشد میکشت تا کشتاری بزرگ از آنها کرد پس به میمنه حمله کرد و گفت کشته شدن بهتر که آدمی تن به ننگ دهد و سرزنش مردمان بهتر که آدمی به دوزخ در آید. بعد از آن به میسره حمله کرد و میگفت من حسین فرزند علیم، سوگند خوردم که از راه خیش بر نگردم. خاندان پدرم راهامیم و بر دین پیام بر استوارم. یکی که در لشگر کوفه بود گفت ندیدم کسی که دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و یارانش رانش کشته شده باشند دلدار تر از وی چنان که مردان بر او میتاختند او با شمشیر حمله میکرد و آنان را مانند گله بز که گرگ در آن افتد میپراکند ما سی هزار بودیم وقتی حسین حمله میکرد منحظم میشدیم و مانند ملخ پراکنده و حسین به جای خیش باز میگشت و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگفت حسین 1800 و بعضی گفتند 1950 مرد جنگی بکشت غیر از مجروحان عمر سعد قوم خود را گفت وای بر شما میدانید با چه کارزار میکنید این پسر کشنده عرب است از هر سوی بر او تازید چهار هزار کماندار تیر باریدند بر وی و شمر ابن زل جوشن با قریب ده نفر از پیادگان کوفی سوی آن منزل آمدند که بار و بنه و ایال او بدانجا بودند و میان او و پردهش حائل گشتند حسین بانگ زد وای بر شما ای پیروان آل عبی صوفیان اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید در دنیا آزاد مرد باشید و اگر از عربید به گوهر خود بازگردید شم فریاد زد ای پسر فاطمه چه میگویی؟ گفت من و شما با هم کارزار میکنیم و بر زنان گناهی نیست تا من زنده ام آن سرکشان خود را از رهل و ایال من بازدارید شمر گفت ای پسر فاطمه این کار کنیم تو حق داری فریاد زد از حرم این مرد دور شوید و آهنگ خود او کنید که حریفی جوان مرد و بزرگوار است و با پیادگان نزدیک او شدند و در میان آنها عبال جنوب بود که عبدالرحمن جعفی نام داشت و دیگر قشعم ابن عمر و صالح ابن و سنان ابن انس و خولی ابن یزید و شمر آنها را تحریس میکرد بر عبال جنوب گذشت و او تمام ساخته بود به آلات جنگ و گفت پیش رو عبال جنوب گفت تو را چمانه میشود؟ شمر گفت با من چنین گستاخی میکنی؟ او هم گفت تو با من گستاخی میکنی؟ و یکدیگر را دشنام دازن گرفتند عبال جنوب پهلوانی پردل بود به شمر گفت اینک این نیزه را در چشم تو فرو میبرم. شمر بازگشت و گفت به خدا سوگند اگر دسترسی یافتم تو را به سزا خواهم رسانی چون حسین به سراپرده بازگشت شمر با جماعتی از همراهان خود بر وی تاختند و او را فرو گرفتند مردی از ایشان که مالک ابن نصر کندی میگفتندش شتابان آمد و حسین را دشنام داد شمشیر بر سرش زد و حسین برنس بر سر داشت آن را بدرید و شمشیر به سر رسید خون روان گشت و برنس از خون پر شد حسین گفت به دست راست خود نخوری و نیاشامی و خدای حشر تو را با ستمکاران کند و آن کلاه بیانداخت و دستمالی مالی خواست و زخم سر ببست کلاهی دیگر خواست بر سر نهاد و امامه بست مانده شده بود آن مرد کندی بیامد و آن کلاه اول را برداشت خز بود چون نزد همسر خیش برد و آن را می شوست. از خون زنش گفت در خانه من آوردی جامعه پسر دختر پیغمبر را که رو بوده بیرون بر و دوستان وی میگفتند این مرد همیشه درویش و بیچاره بود تا بمود حسین بار دیگر با اهل بیت وداع کرد و به صبر و شکیبایی فرمود و نوید سواب و داد و گفت ازارها بپوشید و آماده بلا باشید بدانید که حافظ و حامی شما خداست و از شر دشمنان شما را نجات دهد و عاقبت امر شما را نیکو گرداند و دشمنان شما را به انواع بلا عذاب کند و در عوض این بلیت به انواع نعمتها و کرامات برساند پس شکایت نکنید و چیزی که از قدر شما بکاهد به زبان نگویید شمر با پیادگان نزدیک حسین رسید. حسین بریشان ایشان تاخت آنها را راند. باز او را در میان گرفتند. عبدالله ابن حسن از نزد زنان دوان دوان بیرون آمد و او پسری بود خردسال به بلوغ نرسیده تا کنار حسین بیستاد. زینب دختر امیر المؤمنین خیش را به دور سانید که نگذاردش و حسین گفت ای خواهر او را نگاه دار آن پسر سخت امتناع کرد و گفت نه به خدا قسم از ام خیش جدا نشدم بهر ابن کب شمشیر به قصد حسین فرود آورد آن پسر گفت ای فرزند زن زشتگار ام مرا خواهی کشت بهر شمشیر زد آن پسر دست را سپر کرد و شمشیر دست او را جدا ساخت چنان که به پوس آویخته ماند پسر فریاد زد یا عبتا پس حسین او را بگرفت و به خیش چسبانید و گفت ای برادر زاده شکیبایی کن و خیر از خدای تعالی چشم دار که او تو را به پدران ساله تو ملحق گرداند حسین دست برداشت و گفت خدایا اگر مقدر فرموده ای که تا مدتی اینان را برخورداری دهی پس جدایی در ایشان افکن هر یک را راهی دیگر بدار و ولات را از ایشان خوشنود مگردان هرگز که ایشان ما را خواندند که یاری کنند اما بر ما تاختند و ما را کشتند هرملت ابن کاهل تیری افکند و او را زه کرد در دامان امش مردم روی به حسین آوردند، حسین یک شربت آب میخواست و هر وقت رو به سوی شریعه میکرد، همه یک باره حمله میکردند و او را از آب دور میساختند. عبال جنوب تیر یفکند و آن تیر بر پیشانی حسین نشست، آن را برکند و خون بر روی و محاسنش روان گشت، مانند شیر خشمگین بر آنها تاخت و به هر کس میرسید به شمشیر او را میزد. تیر از همه جانب بر حسین می باریدند و بر گلو و می نشست و می گفت ای امت نابکار حرمت پیغمبر خود محمد را در باره اولاد او نگاه نداشتید پس از من از کشتن هیچیک از بندگان خدا حراسی ندارید و کشتن همه کس بر شما آسان است به خدا سوگند که من امیدوارم مرا به عوض خار کردن شما کرامت فرماید و از شما انتقام بکشد از جایی که ندانید حسین ابن مالک گفت یبن فاطمه خدا از ما چگونه انتقام کشد؟ گفت جنگ در میان شما افکرد و خون شما بریزد اونگاه از آبی دردناک فرستد بر شما حمید ابن مسلم گفت پیادگان بر او حمله می کردند و آنها را از راست و چپ میراند. چون شمر این بدید سواران را به مدد خود طلبید که از پشت پیادگان باشند و مانع فرار آنها شوند و کمانداران را گفت تی رفکندند بدنش چون خار پشت شد و دست از پیکار بداشت و آن سپاه پیش روی او بیست دادند عمر صد نزدیک حسین آمد زینب به در خیمه آمد و فریاد زد عمر ابن سعد را که وای تو ابو الله را میکشند و تو خیره به دو نگری؟ عمر هیچ جواب نداد. زینب فریاد زد وای بر شما مسلمانی میان شما نیست؟ هیچ کس جواب نگفت. دیدم سرش که عمر برگونه و ریشش میریخت و روی از او بگردانید. حسین ایستاد تا ساعتی بیاساید از خستگی جنگ همچنان که ایستاده بود سنگی بیامد و بر پیشانی او رسید پس جامعه برداشت که خون را از روی بسترد تیری تیز سشاخه زهرالود بیامد و بر سینه او نشست سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا میدانی مردی را میکشند که روی زمین پسر پیغمبری غیر او نیست آنگاه آنتی را گرفت و از پشت بیرون آورد خون مانند ناودان برجه دست بر آن زخم گذاشت چون پر شد سوی آسمان پاشید یک قطره از آن بر نگشت و سرخی در آسمان دیده نشده بود تا آنگاه بار دوم دست بران نهاد و روی و محاسن را بدان آغشته کرد و گفت خیش رسول خدا را چنین خذاب شده دیدار کنند. هفتاد و دو زخم بر حسین آمد و بعضی گفتهاند بر او سی و سه زخم نیزه و سی و چهار زخم شمشیر یافتی و تیر بر تنش مانند خار بود بر تن خار پشت و آن همه تیر بر پیش تن حسین بود چون زخم بر پیکرش بسیار شد ساله ابن نیزه بر توهیگاه او زد حسین از اسب به زمین افتاد به گونه راست گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله افتاد و برخاست منادی از بتنان عرش فریاد زد امتی که بعد از پیغمبر خود متحیر و گمراه شده اید خداوند شما را به ازها و فطر موفق ندارد حمید ابن مسلم گفت پیش از کشته شدن او را دیدم پیاده بود اما مانند سواری دلیل جنگ می کرد و از تیرها که می احتراز می و بر پیکر هر سواری که رخنه آشکار بود میزد و می و حمله می‌کرد و می بر کشتن من مسمم شدی؟ به خدا قسم که خداوند خشم گیرد بر شما از کشتن من بیش از کشتن هر بنده دیگر و از شما انتقام کشد از جایی که گمان نداشته باشید به خدا سوگند که اگر مرا بکشید تیغ در میان شما نهد و خونهاتان بریزد و هرگز از شما خوشنود نگردد و از آب دردناکتان چشاند زرعت ابن شریک شمشیری بر دست چپ او زد و ببرید و دیگری تیغ برشانه او زد که به رو در افتاد آنها باز گشتند حسین افتان و خیگزان بود به مشقت برمیخواست بر می باز میافتاد مدتی گذشت مردم از کشتن حسین پرهیز می و هر کدام این کار به دیگری حوالت میکرد پس شمر ابن زل بانگ زد مادرتان به ازای شما نشیند این مرد را چرا منتظر گذاشتید از هر سوی بر وی تاختند زینب دختر علی از در خیمه بیرون آمد و فریاد زد کاش آسمان بر زمین می‌افتاد کاش کوه خرد و پراکنده بر هامون میریخت. بسیاری از رجاله بر گرد حسین بودند و زخم بسیار بر تن او می‌زدند حسین قده آب خواست چون نزدیک دهان برد حسین ابن نمیر تیری بر وی افکند که بر دهانش نشست و آب خون شد حسین قده از دست بگذاشت سنان ابن بر او حمله کرد نیزه بر او زد و خولی ابن یزید به شتاب از اسب فرود آمد که سرش جدا کند بر خود بلرزید شمر گفت خدا بازوی تو را سست کند از شمی لرزید و خود فرود آمد حلال ابن نافع گفت من ایستاده بودم با اصحاب عمر سعد که مردی فریاد زد ای الامیر مجده که اینک شمر حسین را میکشد. من میان دو صف آمدم و جاندادن او را دیدم به خدا قسم هیچ کشته بخون آغشته را نیکوتر و درخشند از وی ندیدم تا به رخسار و زیبایی حیعت او اندیشه قتل وی را از یاد من ببود شربتی آب میخواست شنیدم مردی گفت آب نخواهی نوشی تا به جهنم بروی و از آب آنجا بنوشی حسین را شنیدم گفت من نزد جد خیش رویم و از آب غیر آسن بنوشم و از آنچه شما با من کردی بدو شکایت کنم همه خشمگین شدند چکویی خداوند در دل آنها رحمت نیافریده بود من گفتم به خدا قسم دیگر در هیچ کار با شما شریک نشود شمع سر حسین را جدا کرد و به خولی سر کرد سنان نیزه بر پشت حسین زد که از سینه بیکینه اش سر زد چون را بیرون کشید روح حسین به اعلی رسید گردی سخت سیاه و تاریک برخواست بادی سرخ وزید که هیچ چیز پیدا نبود آسمان سرخ گردید و آفتاب بگرفت چنانکه ستارگان در روز دیده شدند هیچ سنگی را بر نداشتند مگر زیر آن خون سرخ تازه بود مردم پنداشتند از آب فرود آمد کسی در لشگر آمد و فریاد میزد او را از فریاد معنی کردند گفت چگونه فریاد نزنم و حالان که می بینم رسول خدا را ایستاده نگاه به زمین می کند و جنگ شما را می نگرد و من می ترسم بر اهل زمین نفرین کند و من با آنها هلاک شوم آنها با یک دیگر گفتند دیوانه است او جبرئیل بود و جمعه بود دهم ده محرم سال شست و یکم مابین نماز ظهر و عصر و حسین 58 و هشت سال داشت اسب حسین به حمایت او بر سواران حمله کرد و هر سوار را بر زمین میافکند زیر پا مالی تا چهل تن انگاه از دست دشمن گریزان سوی حسین آمد و کاکل و موی پیشانی در خون او آغشته کرد و سوی سراپرده زنان آمد شتابان و گریان و شیح زنان دختران پیغمبر بانگ او شنیدند و از سراپرده ها بیرون آمدند اسب را زبون و بی سوار دیدند و زین را بران واژگون. فریاد به گریه و شیون برآوردند و ام کلسوم دست بر سر نهاد و گفت این حسین است در میدان افتاده در کربلا سر او از قفا بریده و امامه و ردای او رو بوده این بگفت و بیهوش شد به حسین دست ها بر زمین میزد و نزدیک خیام سر بر زمین میکفت تا بمرد جامعه حسین را غارت کردند پیراهن او را اسحاق ابن حزرمی بر برگرفت و بپوشید پیس شد و موی او بریخت در پیراهن حسین بیش از صد و ده زخم یافتند از اثر تیر و نیزه و شمشیر و شلوار او را بهر ابن کعب تمیمی برداشت زمینگیر شد و پاهاش خشک شد و از حرکت بماند زمستان از دو دستش آب چرک می و تابستان مانند دو چوب خشک می شد و امامه او را اخنس ابن مرصد حزرمی و بعضی گویند جابر ابن یزید اودی برداشت و بر سر بست دیوانه شد و نعلین او را اسود ابن خالد گرفت و انگشتری او را بجدل ابن سلیم کلبی انگشت را با خاتم ببرید آن نه انگشتر رسول خداست که از ذخایر نبوت است و قطیفه او را که از خز بود قیس ابن اشعس برداشت و زره او را که موسوم به تبرا بود عمر سعد برگرفت و شمشیرش را جمی ابن خلق اودی برداشت و بعضی گویند اسود ابن هنزله تمیمی و به قول بعضی فلان نهشلی و این شمشیر نزلفغار است. کنیزهکی از جانب خرگاه حسین میآمد مردی به او گفت سالارت کشته شد آن کنیزک گفت من شتابان سوی بانوی خیش رفتم و فریاد زدم زنان حرم برجستند و سینه برآوردند و آن مردم بر یکدیگر پیشدستی میکردند بر غارت خیام و دختران رسول خدا همه می‌گریستند اساس و با ربونه حسین را غارت کردند و بر ورس و حلها و شطران ریختند و جامعه های زنان را برو بودند. حمید ابن مسلم گفت دیدم زنی از ایشان را با آنان بر سر جامعه در کشمکش بود و عاقبت آن مردم چادر از سر او کشیدند آخر کس از اصحاب حسین سوید ابن امر بود زخم سنگین را رسیده بود و افتاده بود بیهوش وقتی به هوش آمد که شنید میگفتند حسین کشته شد شمشیر از او گرفته بودند کاردی همراه داشت و با آن جنگ کرد و کشته شد اروت ابن بتار تغلبی و زیده ابن جوهنی او را بکشتند و او آخر قتیل بود مردی شریف و بسیار نماز بود مانند شیر خشمگین جنگ کرد و بر مصیبت بزرگ شکیب نمود تا میان کشتگان بیفتاد. همیدبن حمید ابن مسلم گفت زنی دیدم از بنی بکر ابن وائل با شوهرش در سپاه عمر ابن سعد بود هنگامی که دید مردم بر زنان حسین و خیام آنها در آمده غارت می شمشیری در دست گرفت و جانب خیام آمد گفت ای آل بکر ابن وائل آیا دختران رسول خدا را تاراج کنند؟ فرمان خدا راست و بس به خونخواهی رسول خدا برخیزید شوهرش او را بگرفت و به جای خود بازگردانی دیدم زنها را از شادرها بیرون کردند و آتش در آنها زدند زنان سربرهنه برهنه هاشان ربوده پای برهنه گریان بیرون آمدند خار و اسیر و گفتند شما را به خدا ما را نزدیک مقتل حسین برید چون بردند و دیده زنان به کشتگان افتاد فریاد برآوردند و بر روی زدند به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی را دشمن و دوست را بگریانید چون برادرش را برخاک افتاده دید زاری کرد و به آواز سوزناک گفت یا محمدا! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند، این حسین است به خون آغشته پیکرش پاره پاره، یا محمدا، دخترانت اسیر شدند و فرزندانت کشته در این دشت افتادند و باد سبا گرد و غبار بر پیکرشان میپراکند، روز پیزادگان کشتندشان، به خدا شکایت میبریم و به محمد مصطفی و علی مرتزا و فاطمه زهرا و همزه سید و شهده. دریقا دریق امروز جدم رسول خدا کشته شد. پدرم فدای آن که روز دوشنبه سپاهش تاراد شد. پدرم فدای آن که بند خیام او را گسیختن. پدرم فدای آن که به سفر نرفته تا امید بازگشتش باشد. و خسته و زخم دار نیست تا علاج شود پدرم فدای آنکه غمین بود تا جان سپرد پدرم فدای آنکه لبتشنه بود تا جان سپرد پدرم فدای آنکه از محاسنش خون می چکی. پدرم فدای آنکه جدش محمد مصطفی است پدرم فدای آن که نبیره پیغمبر را نماز، ای اصحاب محمد اینها فرزندان مصطفی که چون اسیران می کشند و میبرندشان. برندشان سکینه پیکر پدرش حسین را در آغوش گرفت جماعتی از اعراب چادرنشین ریختند او را کشیدند و از پدر جدا کردند سکینه گفت چون او را در آغوش گرفتم بیهوش شدم در آن حال شنیدم میگفت چون آب گوار آن یادم کنید چون از غریب یا شهیدی شنیدید بر من بگرید ترسان برخواستم و چشمم از گریه آزرده شده بود لطمه بر روی میزدم ناگهان حاطفی گفت آسمان و زمین بر او گریستند اشک فراوان و خون گریه می کنند بران که در کربلا کشته شد میان مردم فرو مایه بدگوهر بی پدر از آب او را من کردند با آن که نزدیک آب بود ای چشم گریه کن بر کسی که از آب نوشیدن باز داشته شد فرشتگان بانگ به گریه بلند کردند و گفتند ای پروردگار این حسین برگزیده تو و پسر دختر پیغمبر توست. خدای سایه قائم را به آنها نمود و گفت به این انتقام میکشم خون او را. ابن مسلم گفت به علی فرزند حسین رسیدم دیدم بیمار است بر بستر افتاده و شمر زل زلجوشن در آن خیمه با رجاله بر سروی بودند میگفتند این را نمی کشی؟ شمر شمشیر برکشی تا او را بکشد من گفتم سبحان الله آیا کودکان را هم باید کشت این کودک است همین بیماری او را از پای در آورده است ایستاده بودم و هر کس می آمد و می خواست آزاری به او جلوگیری میکردم تا وقتی عمر سعد برسید. عمر سعد دست های شمر بگرفت و گفت از خدا شرم نداری و می خواهی این جوان بیمار را بکشی؟ شمر گفت فرمان امیر است که همه فرزندان حسین را بکشم. عمر مبالغت کرد در منعوی تا دست باز داشت و به سوختن سراپرده های ایشان فرمود. و بعضی گویند زینب دختر علی بیرون آمد و گفت او کشته نشود مگر من هم با او کشته شوم شمر دست بداشت. چون عمر سعد بیامد زنان در روی او فریاد کشیدند و گریستند. عمر گفت هیچ کس در خیام این زنان نرود و متعرض این جوان بیمار نشوی. زنان خواستند آن جامعه ها که سپاهیان ستانیده بودند باز دهند تا خیشتن را بپوشند ابن سعد گفت هر کس چیزی گرفته باز دهد هیچ کس چیزی باز نداد پس بر آن چادر و بر سراپرده های زنان گروهی پاسبان برگماشت و گفت پاس دارید کسی بیرون نرود و آنان را آزار نکنی و به چادر خیش بازگشت. چه کسانی حاضرند بر پیکر حسین اسب تازند عمر سعد فریاد زد دهتن حاضر گشتند از آنهاست اسحاق ابن حیوه حضرمی که پیراهن حسین را رو بوده بود اخنس ابن مرسد حضرمی و حکیم ابن توفیل و عمر ابن سبیه سیداوی و رجا ابن ابدی عبدی و سالم ابن خسیمه جعفی و واهز ابن نائم و ساله ابن وحب جعفی و هانی ابن سبیت حضرمی و اسید ابن مالک بدن حسین را به سم اسوانشان کو چنان که سینه و پشتش در هم شکست ابو عمر زاهد گفت این دهتن آمدند و نزدیک ابن زیاد بیستادند. ابن زیاد پرسید کیستند؟ گفتند آنها که از تاختیم عبیدالله جایزتی اندک مقرر داشت. دیدیم هر ده نفر حرامزاده بودند.